هر که بدی را بکشد خرق را از بلای او برهاند و او را از عذاب خدای عزوجد پسندیده است بخشایش ولیکن منه بر ریش خلقازار مرهم ندانستان که رحمت کرد بر مار که آن ظلم است بر فرزند آدم